دیوانه از قفص پرید نویسنده و کارگردان احمد رضا معتمدی تهیه کننده محمد رضا تخت کشیان موسیقی مجید انتظامی بازیگران عزت الله انتظامی خبرداری ماری که تو هستین پرورندی الان سر میرسه تا زرش بریزه به جون لاجون بابا. باباق علیه نسیریان این قد نیشون کنایه نسن رک و پوسکنده حرفتو بزن ببینم چته. پرویز پرستوی من خوره ندارم که فکر کسی رو بخورم شما تا قیامت فکر کن نیکی کریمی چند تا مرد اگه تو آلم راشه یکی چمی خود نامردشه. رضا سعیدی تو پرونده پزشکیش نوشته این جناب یه ترکش تو سرشه نمیدونم چی میشه میزنه به سرش دیگه هیچ کیجوری دارش نیست علی رضا عوسیوان خیلی وقته انتظار این لحظه رو بکشم اگه یزیدی عمو با پدرش صحبت کنه چادر مشکی رو صندلی نشسته. مردی حدوداً چهل ساله با لباس فرم آبی رنگی که معلوم نیست مال کجاست، روی ویلچر کنار زن دیده میشه. پای چپ مرد از زانو قطع شده. روبروی اونا یه میز که مردی پشت اون نشسته و در کنار میز آقای میانسالی با ریش و موهای پر رو صندلی نشسته. انگار دستیار قاضیه در اتاق نیمکت هایی هست که همگی خالی هستند اینجا یه دادگاهه مرد روی ویلچر گوشه لبش پرشه عصبی داره و دستاشو روی کیفی که روی میشه قفل کرده انگشتش مدام توی هم میچرخن نیم نگاهی به زن میکنه جناب غازی باور کنید دوستش دارم از تحه دل هنوز که هنوز اسمشو میشنوام تمام تنم میلرزه چندتا تو مرد اگه تو باشه یکی همین خود نامردشه. هم دوست شترین هم اومدین ازش جدا بشه اول فکر کردم اون به ترحم من نیاز داره. آه. اما بعد فهمیدم نه این منم که بیشتر از اون نیازمنده ترحم استم. قشمون شدیم؟ نه نه نه. ایشون برای خودشون یه قهرمان هستن. مردش یه جور قهرمان زنده یه جور دیگه. اون احساس افتخار میکنه به اون با دیدی تحقیر نگاه نکنید. اون تو زندگیش به هر چی رسیده. اما من من چی؟ یه روز اسیر احساسات بودم یه روز فکر زندگی یعنی یه آرمان بزرگ اما امروز که با آخر خط رسیدم تای همه اون آرمانای سراب میبینم احساس میکنم فریب خوردم آرزوام به باد رفته احساس پوچی میکنم حالا اگه شما جلوی منو صد نکنید میخوام دنیای اطرافمو دوباره نگاه کنم میخوام به خودم فرصت فکر کردم بدم میخوام همه چیزو دوباره برای خودم معنی کنم و فکر میکنم راه حلش جدایی از این مرده نمی‌دونم شاید فقط اینو میدونم که میخوام آزاد باشم میخوام خودم از این قید و بندی که برای خودم درست کردم رها کنم میخوام همیشی زو دو مرتبه برای خودم معنی کنم اصلا میخوام بدونم می کی هستم چی هستم نظر شما چیه من موافق حرفی ندارم فقط میگم منو با خودت ببر من خوره ندارم که فکر کسی رو بخورم شما تا قیامت فکر کن مگه من جونت گرفتم؟ آره. جناب قاضی، من تو زندگی با ایشون آزاد نیستم. اسیرم، اسیر دلم. دیگه نمیتونم با این سارت کنار بیام. میخوام بنده دلمو پاره کنم و از این زندونی که خودم واسه خودم ساختم بزنم بیرون. این دست دستبندهای منو میبنده. اگه با اون باشی همش باید دنیا رو از چشم اون نگاه کنی. یه مش خیالات قشنگ که متأسفانه هیچ کدوم واقعی نیستن. اون همه چیزو یه رنگ دیگه‌ای میبینه. چشای اون رنگای واقعی این دنیا رو تشخیص نمیده. جناب غازی مشکل تشکیس رنگ و این چیزا نیست این بابا مشکل مغزی داره تو پرونده پزشیش نوشته این جناب یه ترکش تو سرشه نمیدونم چی میشه میزنه به سرش دیگه هیچی جلو دارش نیست خدا رو هم کسی یه چیزی در دستش نباشه درسته؟ البته این حرف این اونه من که یادم نمیاد آذرم حتی به یه مورچه رسیده باشه ولی خب وقتی آروم میشم یه مش شکر ارتبط نشونم میدن میگن اینا رو تو شکستی تولت بار کردی اینه کار توه طبق گواهی این پرونده شما اختلال مشاهر بری این اتهامو رو قبول میکنید جناب غازی کدوم پزشک کدوم شهادت باشه ما که از هفت طولت آزادیم چه میکنه؟ فرمیکنه اکشمدیم نمیدی جناب غازی مشکل داره مسئله داره همچین بالا کنی نشکنی هرونش درفته گناهی حاج خانم چیه که باید پای این آفتاب لببون بسوزه هنوز جوونه هزار تا آمال و آرزو داره یه حق سادش اینه که بچه دار بشه بچه نداری؟ نه جناب غازی بچهش کجا بود وقت جنگ خودش هنوز بچه بود وقتی هم که برگشت دیگه باز ازش شما وکیل وسیع خانمی احکمه طرفه هم تکلیف دادگاه رو روشن کن. این پرونده تا حالا ده بار رفته و برگشته جناب قاضی طلاق که زورکی نمیشه میشه تا حالا ده بار منو کشوندن اینجا هر بارم یه جوری ازش در رفتم منزنم رو دوست دارم به هیچ قیمت یا مدش نمیدم با لباس سفید اومده تو خوم وقتیه زمین میدم بره که فقط خرجش یه پارچه سفید باشه بسیار پس خال میدا فنی بر. من برای سود روک طلاق شما از آقای روز به ایرانی ده روز فرصت میدم اگه نظرتون تغییری نکرد باید لازمونه ایچ زن کیفش رو دست میگیره به طرف در میره دم در دو مرد جوان با لباس شخصی استادن زن در رو باز میکنه که بره بر میگرده به مرد نگاه میکنه صورت زن غمگینه مرد سرش رو به طرف زن میچهد قاضی عینکشو رو از روی چشم بر می داره پرونده رو میبنده و از پشت میز میاد پایه. نه مگه دیبی شاخ اون داره شما اینفته روز به با بینچر به طرف قازی بوده متاسفم از من کاریست مشکل جای دیگه است یه اموی یهناطنی که او به س بیرس بابا گنددار داشت مثل اختتاب اووس افتاده این خون واده یه آدم نازینه اهل هنر صف های گندار رو و اون ای درد کل یه با من قطول کهطرف حالا کشداد بینختره هاتا از رودم مصطفی بردار. آدم خطرناکیه نگاه به اون حجر فکزدنش نکن روزی هزار تا مثل من تو رو میخره و میکروشه آدمی آدمیزاد بگیر تا برچ بیست طبقه تو ناف شب نیاق داره کن بسر یک جماسو خودش بچره نه اون دیگه به درد تو میخوره نه تو به درد اون مردای جوانی دمدن میان طرف روز به آسف، دلم بخواد یه قول مردونه به این هابنده امورات سوالات دوله زیر دست فراستیداری عمل کند. برو سراغش. بگو اول من از این چهل واری بیاریم. بیاری روز به کیفشونی که فراستی؟ این تو هم یه مشترک فاز موصوفیه. بالاخره خرد تو عدالتی است. اینشیز اسرد میشه. من رد این لاشگاری گرفتم پوشش به ای جای گرمه. اگه این نکنم، که تام پوشش بیجای گرمه. اگر وادوم این لاشگاری چین کنم یه دو کیل دستم به پرین روحام میزندش. قول میدم پوشش من از این چهل واری بکنم و خودم کمکور کنم. خیالت تخت. پیش از اینکه تو گوره گم کنی مصطفی میفرسته در جهنم من به تو میگم پا تو از رود دومش بردار پای منم پیش و روزبه دستش رو به طرف آصف دراز میکنه مثل که یه سرباز اگه قاضی هم بشه باز یه سرباز یه فرمانده اگه دیوونه هم بشه باز یه فرمانده است آصف سلام نظامی میگه روزبه میخنده مرده جوان روزبه رو میبره آسف میره طرف پنجرهٔ اتاق دادگاه یه آمبولانس پایین توی خیابان هست دو مرد جوان روزبه رو میزنن توی آمبولانس آمبولانس حرکت میکنه یه ماشین پژو مشکی دم یه ساختمان بزرگ اداری نگه میداره آصف کیف دست از ماشین پیاده میشه میره طرف ساختمان با عجله از پله‌ها میره بالا میرسه به یه راهرو دم در یه اتاق علامت اتاق رئیس کوبیده شده در رو باز میکنه یه مرد حسین که قسمت جلوی موهاش ریخته و ریش جاگندو می داره توی اتاقه همدیگه رو بغل میکنن و گوسی. مرد حسین با دقت به حرفهای آسف گوش میکنه. بعد گوشی تلفن رو بر می داره گوشی رو میذاره. یه مرد با پرونده زیر بغل وارد اتاق میشه. پرونده رو دو دستی و با احترام زیاد به طرف مرد مسن میبره. مرد حسین به آسف اشاره میکنه. مرد پرونده رو میده به آصف. آصف اینا که آویزون گردنشه به چشماش میزنه به برگه های پرمند با دقت نگاه میکنه بعد از مدتی بلند میشه با مرد دست میده و خداحافظی میکنه توی یه جادی خارج از شهر یه ماشین بنز قدیمی با سرعت حرکت میکنه میرسه به یه باغ بزرگ با دیواره آجاری بلند که شاخاهای درخت از روی دیواراش قد کشیدن دمه در آهنی دولنگه و بزرگ باغ نگاه میداره. نگهبان دم در به راننده که همون مرد موسمیه که آسف و آشمالاقات داشت سلام میده مرد وارد فضای بزرگ باغ میشه که ته اون یه ساختمان خیلی بزرگ دیده میشه مرد از ماشین پیاده میشه با سرعت از پله به طرف داخل ساختمان میره وارد ساختمان میشه مردی روی برانکارد دراز شده یه ملافه روش کشیدن یه مرد جوان برانکارد رو از راهرو به طرف جایی مرد دیگه با لباس فرم آبی و با عینک سیاه دست چپش رو میکشه روی دیوار رو راه میره دست راستش از آرنج قطع شده. یه نگهبان دری رو که نرده های آهنی با فاصله کم روش جوش خورده باز میکنه. مرد مسم وارد میشه نگهبان در رو میبنده توی راهرو مرد جوانی با چوب زیر بغل در حال حرکتی پای راستش از آنو قطع شده. مردی با روپوش سفید از اتاق میاد بیرون. مرد مسن همراه با دکتر خیلی صمیمانه در حال رفتن به جایی هستند. میرسن با اتاقی با در فلزی که قسمت بالایی اون یه پنجره مشبک با سیمای فلزی دیده میشه. مرد مسن از پنجره مشبک توی اتاقو نگاه میکنه روزبه ایرانی روی ویلچر با سه نفر دیگه که لباس آبی پوشیدن و یه مرد که روپوش سفید تنشه اونجا. استاد، شما موتا. اما اون وانمود میکنه حالش خوبه یه شاگرد سالهای دور بعد از یک عمر فراق یه پیغا و فقط یه توازه مردان بیرون این چاردگاه یه ترکش توی سر یه پای چولا یه روح ناراح فراری از صندلی اگه بلای سرش بیاد مسئولیتش رو پوش پوش خداحافظی میکنه و از اتاق میاد بیرون دو نفر روزبه ایرانی رو دراسکش با تخت سیار آوردن توی یه اتاق روزبه میشینه ملافر از روی پاهاش میزنه کنار پای مسئولین رو روی زانوش جا میده روزبه از تخت میپره پایین مرد موسم موسیمبرگی رو از دکتر میگیره و اونو امضا میکنه همسر روزبه با روسری و مانتو در حال بالا آمدن از پلههای یه ساختمانه وارد میشه تابلو دارول ترجمه دیده میشه فریبر در رو باز میکنه میره تو خانم فریور تازه اومده میگه فقط یه تسرم یه مرد جوان با و سیبیل تراشیده توی اتاق ایستاده. زن میشینه پشت میزش خیلی وقت انتظار این لحظه رو میکشم اگه ایزه بدی عمو با در صحبت کنه این مادیون هنوز صاحب داره از روز بهارت میاد از منم خجالته میکشی عمو منتظر ایزه نمونه هفت تا دختر کورو یه شبه میده بوی کباب شنیده خبری نیست خردا میکنم ثروتی که پدر شما از دست داده این طرف عموی شما چم کرده این برای شما مفومینه من باید فکر کنم حالا حالاها میخوام فکر کنم اون خودم میتونم تسلیم بگیرم برای پس مونده زندگی مای بین دو راهی این همه ثروت باید به کی برسه چه فرصتی از این بیتر مگه قرار من فقط هم یه فرصت رو داشته باشم جالبه از پشت پرده معامله تموم شد و یه برچست قیمتا هم پرده رو پیشونی ما کسی که دست و پا نداره از اون بهتر عقل درست حسابیم نداره با یه چشنگیش میشه شریک زندگی اما نوبت به ما چه میرسه با 100 جور ناس و خمس به حال خودم بذار از این بود میکنم خودم رو هم انتخاب کنم قیمم لازم ندارم انتخاب کن بله اشتباه نکن احساسو تو بذار کنار عقل تو بکش پیش این یه پیامه یا یه دستور نه حرف دل خودمه من از روزه که پسر خونده شدن شدم چشم دنباله توه حالا که وقتیش رسیده میخوام خودم این میورو بیچینم نهش نبیم به هر قیمتی هم شده پاش باز صادم. تهدید میکنی؟ غلط میکنم ولی اگه تو بخوای پشت پا به همه چی میزنم زن صورتش میدره تو دستشو میره تو مرد به طرف در میره من منتظر میمونم تا هر وقت که لازم باشه زن یا می پرس میخواره نیوان آبا برمیداره کمی آب میخواره لیوانو می چسبونی پیش میش یه ساختمان خیلی مجلل با ستونای زیبا وسط یه باغ بزرگ. داخل ساختمان پر از اشیاء عتیق است. مرد مصلی روی تختی دراز کشیده. یه زن میانسال از کنارش رد میشه. مرد دیگهای کمی دورتر روی صندلی نشسته. زن جوان همون خانم فریبر ظرف میوه به دست وارد اتاق میشه میره طرف مرد روی صندلی. مرد اصابه دست به طرف مرد روی تخت یا همون آقای فریور میاد خبرداری ماری که تو هستین پرورندی الان سر میرسه تا زرش بریزه به جون لاجون بابات میدونی که قراره بیاد آخرین ارسی میگاس بابا تو بکش بالا همون آقا شوهر مظلوم چلاق جالبه حقینه که استاد فریبر بعد یک عمر خونه دل خوردن واسه فرهنگ به هنر این مملکت به این حال روز بیافته شوهر غربتی تو بیاد اموالش با سادر گناه بریزه تو القومه ماش مش پفخور فکر میکردی انقدر چش سفید از آن بیاد آی دختر گوش کن ببین چه میگم این خونه پایین منقل دود شد رفت هوا فردا آبار نشی سر من من خودم بام گیره زودتر بساطه جم کن با ننت از اینجا بزن به چاک سنده این خونه دیگه دست من نیست دست دولته الان شوهر به چشم میاد میخواد قیمت بذاره این خونه چیک نزنی من اینجا حالی شد اون روز که ده جور در آمد زمین و ملکو باق توی این خونه سرازیر بود من رو باید شریک مالت میکردیم نه حالا که کفکیر خورده تای دیک پنج ساله که سنده این خونه رو دست به دست کردم قلوب قلوب رکتم تو حلقت انگر چه آقا بیله همه رو ارد کشیدی رو جنچه نخواه هر هرچی میخوردی از مایه میخوردی آی دختر بیای من بساطه ارنی اری خورده اصفان دود کن بذاری بود ماری بره جونواره که بیشنستان به سک بود کشه سرمان پرده باشه مغز خرک نخورده که آقای فریبر توی تخت اینجوری خیره مینده رو صورتش عرق نشسته بله خیره با این دختره میخوای چی کار همینجور همین بر دلت شستونده که چی بشه؟ سهت بار بهت گفتم بدش به این پسره سپروز کار بلده زیر دست خودم گنده شده هیچی نبود الان که پاد لب گوره باید آرون بگیری نمیداشت دابرا بشی لاحل این چهار دیواری روستم داشت. از اول هم عقل درسته ساوی تو کلت نبود دختره رو دادی به اون پسر آسیمون جول به جانی که بشه قاطع نونت شد قاطع جونت سرمایه رو باید به کاران داخت نباید آتل باطل بمونه های دختر یه لیوان آب بخوردم بیار شیشونه بیان دیدن علاکی دستشون ببرد کرفت دقانه بردر لیوان آب و ازنان میگیره میریز حلق بردرش زن موسم توی را تو مشمول جمع کردن خوبه شیشایی بلدانی من میرم خرپشته باشه شطور دیدی ندیدی کار پیشین پیش سرن پسران نکندگیله ایرانی دمیدن یه بری بهزمش نشون باورم نمیشه این توی؟ ممور داره املاک یا؟ بله یا چی؟ همسر تو از کنار ذمرت میین برره تو ساختی تو نبودیم گفتی پدر تو مثل گوهر قیمتیه می گفتی تمام هنرری من بکرد یه جاتون خلاصش رو رو بوت می پررسیدی حالا همینطوررهدا اما حالا دیگه یه فضیلت فچی شده است دیگه تو رقای اون شعر موسیقی جاری نیست. افیون و مصطفی چشمی خوش کرده تو مفتشی یا مموره داری املاک؟ اومدی آب رو ببری یا خونه خرابش کنی یلدا کی تو رو افزوم کرده؟ این حرفای تو نیست برو دهنتو بکش تو میتونی زن من نباشی اما نمیتونی دختر فریرن نباشی تو اصل و نسب داری اگه اراده کنی از اون ریشه هزار جوونه سر میزنه گلدو! زن موسیقی کنار تخت فریورد که گردنش کت شده نشسته رو گریه میکنه یلدا آرام و با ناباوری میشینه کنار تخت فریورد اقربه های ساعت دوازده رو نشون میده یلدا و مادرش روی نیمکتی توی راه بیمارستان نشستن یلدا بلند میشه قدم میزنه میره طرف دکتر که انتهای راهروئه دکتر پرونده به دست با یلدا میرن توی اتاق عکس های ریه رو میزده توی دستگاه نمایش عکس رادیولوژی. دکست کاری که میتونم بکنم اینه که نظرم شرایط از این بدتر بشه اما ناچارم همی چیز رو کراست بهتون بگم پدرتون سکته کرده یه شک ناگهانی در سر وارد شدن مواد سمی بخون غیر ممکنه بدتر از اون دریه هاست که آبا بورده من فعلا تراش میدم تا این یکی رو, کنتر رو کنم برای علاج جدی عمل باز قلب لازمه که در این شرایط برای اون خطر منک. میتونم یه فرصت براتون فرام کنم تا پیزه رو به خالز یه عمل از, از تریر مونیتور تو بهبود رو یه عمل از تریر مونیتور میتونه شهر تو بهبود البته من زیاد نمیتونه موضوع به این شکل ادام بعد خیلی زود تصمیم میگیرین و به من جواب یلگا گیش به حرف دکتر گوش میکنه دکتر در رو باز میکنه بیرون ایرانی پ با یکیسی پلاستیکی بزرگ بپار از دارو چیزی بین ما ناتمون نمونده نمیتونم تو این حالت تنات بذارم تو های تیار کمک داری؟ به کمک تو نه ما دیگه حرف برای گفتن نداری روز به میمینه یلدا میره یه تاکسی کنار پیاده روی نگه میداره یلدا با چادر مشکی از تاکسی پیاده میشه به طرف یه محلی که تقریبا قدیمی با ساختمان های کونه یه جورای شبیه انباری هستن. انبار اشناس. از پله های بالا میره. میرسه به یه راه را باری که کلی کارتون توش چیده شده روهم هم. میرسه به یه اتاق. در اتاق بسته است. از پشت شیشه در پسر رو میبینه. پسر در رو باز میکنه. گلدا میاد دو. میره طرف یه میز که مصطفی اونجا پشت میز نشسته مشغول حساب کتابه میشینه رو روبروی مصطفی من یه نگفتم سر من آوار نشین من دستم بسته هست الان یه گور و سه چارشدانم ندارم مابام داره میمیره باید به هر قیمتی از بره خارج وقت زیادی ندارم باید پولشو جور کنم از این خراب شده چیزی در نمیاد وقت ترفتن نکنم هر چی از مونده مانه تو بابام بفرس بفرست بره <تصفيق> خونه خونه که دود صورت رفت هوا جزیه مشخاکستر چیزی نمونده نه بره من نه بره تو نه بره ننت پس اون گور به گور اون اونقد تو قبل ننم قیمت بذاره خوب گوشات واکم ببین میگم اگه بابام بمیره پتت و ریختم <تصفيق> زبون قرار وردی جون بابا منان تو دست داده اگه کتابی های نمیذارم زیاد تقدید هم میکنی زعیفه؟ تقدید هم اما اگه غیرت نشون بدی هر کاری بخوای براز میکنم ام. این شد یه حرف ازا آمد یه عمر انتظار چشتم تا از شما جماعت یه دهن رود پشتم حالا حرف هم گیر خوب بیفهمین امروز برای توان قربتی قرار دارم میخوام ببینم این خروس بیمحل خفه خون میگیره یا بدم واسه گوگولی گوگوش ساز بسارم گردا میره مصطوفی به پسرش میگه ما تقم و ترکم بابا نیست جور پوزداره مثل شیر یه همچین دختری بهتر از زد تا پسر مثل تو یه زهنی بزن به فراست بگو مصطفی تو راست اینجا یه ساختمانه بزرگه که تابلوی اداره حقوقی بانک شعبه املاک و مستقلات روش بیدن منشی پشت میز نشسته دوبه روش در حالی که اساش دستشده خوشک و رسمی روستنددی نشسته مردی پرونده به دست از یه اتاق دیگه که همون اتاق رئیس میاد بیرون. مصرفی اساشو میکوبه به زمین و به مرد اشاره میکنه که بره کنار مصرفی به طرف اتاق رئیس میره رئیس هم مرد موسمیه که روز بهه از اون آسایشگاه آورد بیرون اسمش آقایی فرساتی سگو وزی؟ کرد ویل کرده میبینو مردم تو نشستی تو این چاردیواری؟ خیال کردی آلم رو کردی گلستون صد رحمت به قبرستون موریانه همه چی رو میخوره غیر از غم ساخونه رو چی شده سنگی این زبون بسته ها رو به سینه میزنی؟ به ما چه میرسه یه مور رو بکنین. مو خودتون اسپد میشه؟ این اوضا رو که من نساختم بیلا دیک، چونده. چه <تصفح> توی دریا، ماهی ماهی رو میخوره مرغ ماهی خار از بیرون میاد، هر دوره میخوره اون چونه برای که به جون مردم انداختین اگر از پاره‌ی تن خودشون بود، اینقدر عرضگیه میکرد؟ <تصفح> دیروز سفر بلای این مردم بود حالا شده بلای جون مردم روزی اون دیوار گوشتی کشید دوره این مملکت که اجنبی سر ناموس من و تو یا خط مینداخت برو سر بدن خونه نوی سولت خان ببین چه خاکی به فرقشون کرده حکم خب تقلیر گفت دستش مثل آبار خراب شده سرشون نوی سولت خان در کرده بردنش منی بر چمونه گفتن نفاکتوسه علاجم نداره مگه ازای بره فرنگ زن با چشتیز آبه را در به در دخترم کاسهی گدای گرفته دستش افتاده تو راه بازار مادر که نیست باید با زن بابا ساخت تماس بگیر با دادستاني بگو جناب عاصف یه رونوشت از پرونده امارات سولت دوله بفرست اینجا کار با دوستی بازی درست میشه نوی سولت خان یه عمر با اب روز زندگی کرده حالا هر روز منتظری که آدم تو بیاد جلو در همسایه اسباب اساسیش بریز بیرون اونم با خفت و خاری توی سوراخ گمه گور بشه چه به لطف آدم تو خب گولش محیا شد تا وقتی اینجا نشستی کار درسته میشه یه توچپا از این چهار دیواره بزن بیرون ببین چه آشی برای مردم پختی خونه تو کسیف نکن قربنده رو شب خونم فردام علطلو میرم سرای سهلت دوبه نمیذارم یه قرون از بیتول مال حیف میل بشه نه ده شی از حق و ناز زایه آشیه که خودت پختی خودت هم باید سر بکشی <تصفح> فروزت با ماشین به طرف ساختمان پدری یلدا میره پسرمون در منتظر اونه پرونده رو میده به پسرمون یه روزه توی اون خونه چه خبر باید موکر و کرفت رو رفته اون من <تصفح> آدم که وقتش میشه عصفش تو طبیله خر میشه واستو فیشانار کهشه پرونده این خونه اینجاست گروه کارگشایی گذاشته تا قرون آخرش هم گرفته اون طفله معصوم دست از پا خاطر نکرد خاطر اومده یه راهی هم پیش پای ساختمانه گذاشته بعد میشه کنارین از اینا رو کوفوسکنده حرفت بزنم ببینم چته هرسه خرسه مرده به کفدار میرسه نوشیجان شما خودت درف اول و آخرو زدی ما جلوبالاسمونو جمع کنیم بزنیم به چاچ امره باشه در باز میشه یلدا خانم نتیجه مرحوم سولت دوره یلدا با چادر نماز سفید میاد دم در فراست با دیدن اون حیرت زده میشه و سرشو مندازه پای مصطفی اصابه دست توی کوچه به طرف خونه میره درباز میشه میره تو یه خونه ویلایی قدیمی با ساختمان آجاری زیبا و یه حوض بزرگ وسط حیات یه آقای مستخدم مصطفی رو به طرف ساختمان راه نمایی میکنه از پلها میره بالا داخل خونه کاملا دکور و چیدمان سنتی داره مصافی میرسه به یه اتاق که توی اون فراسط روی تخت راست کشیده یه درجه یه تب توی دهانشه و یه پزشکم داره فشار خونش رو میگیره مزاحم شدم مراهبیت. از سرای سولت دوله چه خبر؟ سرای صولت دوله فقط خشت و گل نیست دردانه ای در دل داره خونه هم به دیدنش میارزم. هم به خریدنش ما با دیدن صاحب خانه. خانه شد فراموش خانه دهان فراست بسته است این دیالوگا از ذهنش میگذره مصرفی اونا رو نشنید اون بیاد لحظه میفته که یلدا رو دید لحظه که با پسرموی یلدا برای دیدن عمارت رفتند هواسون اون کاملا در پی دختره با صورتی مبهوت حتی عرفای پسرمون رو نمیشنوه یلدا میره اون بی اختیار به طرفش برمیگرده میگرده پسرمون رو به سمت قسمت های مختلف امارت میبره ولی اون همچنان گیج و مبهوت مونده یلدا با سینی چای میاد سینی رو میگیره طرف فراست آدم خاطری دو وازیره نوشدارو بعد از مگه سهروا فراست گیجو خیره به یلدا دستش وسط ها میچرخید یلدا با قیز نگاهی به فراست و پسرمو میندازه و میره صد بار به شما گفتم مواظب فشار خون باش نمک حرام خون سردی واجبه پیاده روی مستحب این قرصا رو حتی یک نوبت هم از قلم نندازید از ما گفتن از شما هم نشنید دکتر میره فراست یقین مصطفی رو که نشسته لبیه تخت میگیره مردی که قروم ساک خیدالت نمیکشی از این روش سپیت پوست خربوطه زیر پا میتری کرم <تصفيق> از خود درخته کف دستمه که بونه کرده بودم مگه آدمت قبلتو نرفته بود اونجا تو چرا لیست کردی فراست زعیف و خودش رو روی تخت بلای ملافا جمعه کار <تصفيق> با دوسی بازی درست نمیشه خودت باید یه توک پا بری اونجا چی این توخ بلقه تو درن من شکست؟ تدم یا دخترم دختر مردم داره من از سر پیازم نتای پیاز هم قیمت؟ هم چی از جون من میخوای ابلیش؟ تو از اون اداره گمه کن رد کارمون نگرفته خواب از چشمم گرفته شیشمال جنس تو بندر خوابیده ساخت و ساز تو تهرون ملیده جرد مرگ پاچیده رو تجارت خونم دنبال شره شیانم راحت کن شیانم راحت میکنم حروم خوری؟ اونم شلقم؟ اومدی با یه دونه گندم چهل سال شرافت رو یه جا دود کنی بره عبا؟ نه، نه حروم خدا رو حلال کن نه حلال خدا رو حروم پول اون امارت رو برمیگردونم به خزونه باباشم خودم میفرم فرنگ جلو دختره همه میذارم به تو برای اینکه دختره اول کار رو هم نکنه یه اقو ببینزم پیش آبا چند آسیاب افتاد به نام یعقوب به کام تو <تصفح> آب خودشی را شمی و چاله را پیدا میکنه انقدر خره که ما پیاده <تصفح> سال 1382. دو دو. تکلیف ما با این سلفخر مفرد چیه؟ بازارگرمیه تنها سرمایه باقی مانده جناب فریبر یعنی الله خانم بیوه مشخدم فرد به چه قیمتی؟ به قیمت ناموس می ترسم دخترم روی خونه بالا بکشن و یه ارتم روش باز همین و همین کاس گر تو بختر میزنی بستان بزن انو باید به زخمش نخورده شما دست با ما رو بسین. لب تر کنی میدم بدون حفظ میلش کنم بوی اسرائیل اترنت بکن تا پرونده ی حق حساب بندر پیشون جون رو برگیره به دوز به دوز میزن همون اپاسه بونی که به شادوز دوز میزن کلید ختم قائله تو مشت فراسته اگه بابای دختر ریگ رحمت سر بکشه مچون خانوم از هفت دولت آزاد میشه از سایه پاشپرونی خونه ای که با تخت زدم سندش را سریز کن امرو فردا لازم میشه این صدای قدم های که با چادر مشکی دوباره اومده محل کار مصطوفی مصطوفی عینکش رو از روی چشمش برمی‌داره. من پول لازم دارم مصطوفی اینکار تو لذت میبری آدم رو از انتظار زرش کش کنی موش گربه که با هم بسازن وای به دکونه بقام کردم دست بدمانو اون بشه هم معرفت نشون میده اما این آزیریکا از اون جمعه گویتره شرط شما گذاشته گفتم که هر چی باشه پاش بایستادم هم آقلم هم بالغ شرم و حیاء از این جماعت رخت بسته دل تو دلم نیست حرفش رو نزن حرفتو بزن پای من از این وسط بکش بیرون من دستتو میذارم تو دستش خودت تماشا کن که بی‌قاحت تا به کجاست بابا داره می‌میره اما من و مادرش صد بار مردیم تو سیاهی این شب یلدا شرافت تو یا بی‌قاحتت برام چه فرقی میکنه حالا که ما شما شدیم سگی زرد برادر شغال از پشتو داداش شغال خاطر خاطره داداش شیر فرستاده خاصه کاری مسافی پروندی رو میز رو می دوموس یلدا مبهوت می‌شینه رو صندلی صورت گرد و محجوبش و چشمای درشت سبزش پر از ناامیدی میشه مصطفی صورتش رو برمیگردانه شروع میکنه به چرتکه که انداختن. روشو روش بر برمیگردانه طرف یلدا صندلی خالیه یلدا رفته پسرمو با عینک آفتابی در حال رانندگی توی خیابان کنار یه سیگار فروشی نگه میداره سیگاری روشن میکنه این آصف دوست روزبه. گرام دربست؟ دربست نجونم دروازه ها قصد جسارت نداشتم خودت گفتی دروازه ستار خورد یه شب خواستیم بریم دازیش شد محتاب شب چار در عقب ماشین باز میشه روزبه ایک اومنتو ماشین چند ساله برای مستفی کار میکنیم قربون این علامت یعنی عرض زدن ممنوع این علامت یعنی نالیدن با جب من جایی شودم مصطفی رو با حال خودش را میکردم این لغمه دهنه تو نی نشدیل یادم نفهم هزار من زور داره منم که میدونی عقلم کار نمیکنه تو <تصفيق> های قرار زخصی ما رو چوب بزنی اول زنه تو به پا که مثل گوشت قربونی پیشکش از ما بیترون نشه هنوز خر نمورده تو کفت بشه اسم هر کسی ری باده نه نبر زبونت از هلقومت میکنم این نزم جالی خوک نجستت خور خیرم بادد هرچی از دوزبه مونه رمال میبره گوشت رو دادی دست گربه منتظری فقط نازوش کن بیه میرن واسم اون صادقی و صفار <تصفيق> روزبه از پشت دستو و شنی پسرمونو میریم این گوشت قرنی به دماغش شغال خورده روزبه اگه زنده بود. جور صدای زوزه شقا تو شرط نبیشتید پدر یلده روی تخت آی سی یوه از پشت شیشه ها اونو نگاه میکنه شقا اثر کرد برگشت یلدا توی راه رو دنبال سر دکتر حرکت میکنه ادامه این وضعه اگه برای ما محکم باشه برای بیمار غیر محکمه یلده قمدین و مستحصم میره توفر روز به یه دست گل دستشوه داره میاد میرسه به یلده نگران حال پدر بودم بمیره برای شما بهتری زنده بمونه حال روزتون رو درک میکنم حتما چون خودتون ما رو به این روز انداختیم اومدم اگه کمک از دستم برمیاد بکنم برام مهم نیست چی فکر میکنیم برای شما چی مهم هست مگه پیرمرک نفس و یا با جون کندر میکشه یا ناموس یه آدم غریب که چوب هر آسوش کرده آدم یه آه و یه دم بقیهش یک کابوسه که مثل خوره روح تو میخوره اما اگه دم بدم و هم بدین آلم میشه پر از آدم یکیش همین اسم آدمه که مثل داغ دا خورده رو بیشونید اما دروبه جزیمش رجاله خبری نیست یکی از که من ردشو گرفتم یه خومی که شهرچی رجاله در جا میشن رجاله آفتش افتادتون تو نسل آدم کار از کار گذشته خوندن روزه دیگه دردیو دبا نمیکنه جلسه فراسات با ادی در اتاق مزیق. کافی ما مجبوره لازم رو بگیریم و مشکل هم نباید تایی قرار دادی ببندیم که موضوع حل بشه. مسئله مالی چی میشه؟ مسئله مالی ما مشکلی نداره و کافی ما تأثیراتی بگیریم که روی مساله حل شود. برای روی مساله. هم... جلسفراسات. خانمی به دنبال قرار ملاقات است داره فوران شور ببینه. بگید جلسه دارن اسمشون چیه؟ بی فرمان یانلفاریوان. بفرشید شد افترا. توزو میخوام یه چند دقیقه شما ادامه بدید فراست اومد تو دفترش یلدا پشت به فراست دم پنجری بزرگ دفتر ایستاده و بیرون رو تماشا میکنه همونجوری شروع به حرف زدم میکنه دیر به جنبیده آقا پدر از دست من بره منم از دست شما برفتم مشتر خونه حل شده حسینه ای سفر تضمین شده فقط تا وقتی این بیمار رو دست منه آروم و قرار ندارم قرار تن بیمار به مرهم دل بی قرار نشه که دوایی نداره دوای دل بی قرار مهره گیاهه همین که مهر تو جونش رفته به شکل آدمی زاده از ما چرا فقط شکل آدم مونده آدمی زاد به قبل و قرارش اگه سر قرار بمونه محروبت برقرار برقراره یلدا برگاه هایی رو از جیبش بیرون میاره بیا اینم یه صند دست اول برای قول و قرار یه طلاق نامه که داغش کرده رو پیشونیم حالا بر میگرده رو به فراست برگاه ها رو میدازه رو میز آقا من یه موی گندیده شما رو به هزار تا مثل مصطفی آدماش نمیدم پدرم از دست اون لاشگار بکش بیرون یلدا می. فراست رنگ از رخسارش میپره و مات میره پسر اما با ماشینش نگه می داره وارد ساختمانیش از پ ها میره بالا میره توی آسانسور وارد طبقه میشه افرادی پروندهه دست توی راه رو دیده میشم تا مأمور هم دیده میشم انگار ساختمانی دادگاه برش پسرمون میاد توی اتاقی که آصف دوست کمی اومدتر یه میز هست که روز به پشتش نشسته می پسرمون میره طرفه رو در رابطه با پرونده انارت سولت دوله خدمت رسیده فرمایش فسنمون یه چک از جیبش بیرون میاده میده به رویش به بر. مطابقه رقمی که مرگون فرمونید ببخشید سند خونه چی طوری تحویل میدین؟ شما وکیر جنافری برستین؟ هم مایا شاید هم بیشتر هم نشد شما فرض کن شیر خورده صبیه کارت شناسایی معرفی نامه شناسایی شک دارین نه خیلی چکی تون تزمینیه بیه هست ولی برای گرفتن سند یه مدرکی معتبر میخواد پسرمو یه پاکت از جیبش بیرون میاری میده به روز به کارت عریسیه مراسم پیوند یلدا فریور یعوی مستوف اگه افتخار بدین به شدت مسئول میشیم زور جناب مصطفی به عروسی بیشتر از الله خدام شیر نشود برادرشون در حال انتظار برادرزدش می در حال ازدواج اینا دیگه فوتو فن جناب مصطفیه شب عروسی دختر صبح پرواز پدر اون معمولا جای نمیخواد که زیرش آب بره بسیار خوب من من میفرسم خدمت جناب فراسند بس یک شکیتونم از خونه میگیری آسف میزن زن روشونه پسرمون که یعنی پاشو بره خوشگلی نیه 130 رطفان یه کارت دیگه آخه ما دو نفریم قربم همون کفایت میکنه آسف چه پا جلوی روی روز روزه روز با درقت به شماره حساب نگاه کنه چک یادش میاد انگار تقلبی صورت گرفته روز بپامیشه میری. اینجا بایگانی پرونده هاست روزبه و آصف با سرعت پرونده ها رو بررسی میکنن شبه همون دکتر آسف که روزبه اونجا مستقی بود دمیدر دم ساختمان بایگانی کشیده شکل میدار رده شما پیدا برگردم کجا چی شد قلط نکنم خودشه. حلقه یه مدخوده یه گم به ساعت نگاه میکنه نزدیک دهه میاد تو به روزبه و آصف ساعت رو نشونه که یعنی دیر شده آصف روی مردبان کتا نشسته و داره پرمانه رو که دستش نگاه میکنه آقای یافتن یافتن یافتن یافتن وای سبوده روزبه با سرعت میره طرفش آصف میافته روی روزبه پرمنده ها فخش هوا میشن آصف دست میکشه سر روزبه روزبه پای مصنعیش رو دستش میگیره که بیچهاش در رفته <تصفيق> شریف خانی همون دکتر است سراب شریف خانی سندلی چرختار ایشون لطفه ما امشب یه مجلس دیگه هم دعوت داریم سرش سلامت اما تهش <تصفيق> اینجا دم یکی از ترمینال های فرودگاهه. یلدا پشت سر برانکاردی که روی اون دارن پدرشو حمل می‌کنن حرکت میکنه آصف از دور ایستاده و همه رو زیر نظر داره. مصطفی عینک زده و پشت یه ستون ایستاده. پسرمون میره طرفش، توی گوشش چیزایی میگه. مصطفی هم به اون چیزایی گفت. پسرمون رفت. یلدا کارت پروازی میگیره. و سرعت میره طرف برانکاردی که مادرش هم کنارش دیده میشه. آصف میره دنبالشون برانکارد و مادر یلدا توی سالن پروازند. یلدا اینور از پشت شیشه به اونا نگاه میکنه. مادر میاد طرف یلدا. یلدا از پشت شیشه نگران به مادرش خیره شده. مادر میره. هواپیما میره توی آسمان پر از ابر. یلدا همچنان مبهوت پشت شیشه ایستاده. مصطفی و پسرامو به یلدا نزدیک میشن. یلدا برمیگرده طرف اونا. میره مصطفی به پسرامو اشاره میکنه. اون پشت سر یلدا حرکت میکنه. آصف توی باجی تلفن مشغول شماره گرفتنه. اونا رو میبینه. تلفن رو ول میکنه میره دنبالشون. یلدا میره توی دستشوی فرودگاه. پسرامو دنبالشه. آصفم دنبال پسرامو. یلدا شیشه سیارنگ کوچولویی از کیفش بیرون میاره. کمی به خودش توی آینه نگاه میکنه، در شیشه رو باز میکنه و اونو سر میکشه و تا قطعی آخر میخوره. اینجا یه اتاقی که پروندهای زیادی بس بندی شده روی میز چیده شدن. مردی سرشو گذاشته روی میز انگار خوابه ولی این روزبه که با صدای زنگ تلفن بیدار شد. میتری رو واسی؟ از صبح تر می توانم. لطماس واسه کجا باید بیام؟ معلومه دیگه خونه خودش. روزبه لنگان لنگول رسید به آصف. نمیدونم چرا هرچی در می‌زنم درو وا نمی‌کنه. حت دیگه ازش نداری؟ شک نکن نیم ساعت پیش از ماشین مصطفی پیاده شد. یه بارم راست اون مغازه خرد زمین یعقوب دادم خونه رسوندش رفت. آصف داره از دیوار ساختمان میکشه بالا روزبه و آصف اومدن توی ساختمان مشغول جست جو میشدد آصف با شونش محکم میکوبه به در, در اتاق باز میکنه یلدا بیهوش روی تخت افتاده یا دو بیهوش توی امبولنسه. روز روزبه کنارش نشسته پرستاری داره نبض اونونو میگیره ماسک اکسیژن روی دهان و دماغی روز روزبه میخوبه به پنجره یه کوچیکوی آمبولانس یه ترتیب بده فرستاد بیار بیمارستان میخوام با چشای خودش این صحنه رو ببینه بفهمه قصه چیه نمیاد مگه مثل تو دنبالش چره بهش بگو پروانه مصطفی لو رفته میخوام پتش بندازم رو چجوری ردتش بدم به بیمارستان بگو اگه دیر به جنبه کار تموم مصطفی سریعا که کرده زیرا. آمبولانس میرسه بیمارستان یلده آران چشمشو باز میکنه میخواد از رو تخت بلند روز به رو میدینه که توی اتاقه خوشبختانه خطر رفت شده جهاز آغازمه شسشو شده آزمایش خون نشون میده مسمومیت برطرف شده با این خار چون مورد خودکشی گزارش شده فرمی است که شما باید پر کنه. تا صبح ایدامه بدیم فردا سخانه فقط شیر میل کنن نسخه هم براشون نوشتم که تا یک هفته ایدامه بدن فرما منم امضا میکنم کنم نه چشینم چشدی نه مرگو ایم گی بینمکه پیال نزده و برد مزی باز شعرهای همیشه هستای برو کنار ما چیزی برای گفتن نداریم چرا؟ یه چیزایی هنوز برای من مپمه خودکشی یا زندگی من به خودم بروده تو از چون من چی می‌خوای؟ پرسیشایی به جواب موندم مردنه میبرزه تو من برای زندگی از تو جزه نگرفتم که برای مرگ بخوام بگیرم زندگی وقتی با مزه نمیشه که آدم مزه این مرگ میشیش هم منو به جای اولم برگردم جای اولتم بی خود بود درست مثل آخرت سرنوشته شمون کی برای من رقم زد تو نزدی تو برای چی خودکشی کردی برای یعقوب یعقوب ایچه های من تا کی برد بشم در اتاق باز میشه فراستی که اومد تو آسف پشت در بیست فراست مات میمونه وسط اتاق ینده خیره به صورت فراست دوستان خوشحالو پیش میده طرف فراسط میخواد دستشو ببوسی نوزوه با به فراست نگاه میکنه و روبه یردا میگه یه تکیه کوچیک پشت موضوع ساله کنار اون چنار کهنه استاد خومه می بود و شاید وی پیاله شکسته اگه مردم اون دورو بر معرفتی دارن مدیم با و اما یردا خانم دختر جناب فریبر و ماجرای کذایی پرونده امارت سلط و دوله مخلص کلام اینطور که پیداست مصطفی دست نیست. یه روز خونه رو گیر میذاره، یه روزا پولا پولا میونه پاس میگیره. خر باخور میخوره و مرده رو با گور. یه آدم اجاره ای اجیر میکنه و اسمش میذاره پسر خونده. وسط یه خر بگیریه، یهو با یه کشمات میشه شیر خورده یلداخونام. نتیجه اینکه مرده مات شده بعد گورشو بکنه بره قبرستون. این میون چه کاری از من ساخته است؟ مصطفی با همه این زیرنگیش حلقه مفقوده اقتلاس خوش آقا شد دست رون به سریج جوال این دامن من اینا رو نویش دست اصل اصلا شم فردا میرسه دست قاضی وعده این ملاقوات من و مصطفی دو دادگاه یلده دا. خودت هرزون نفروش خودت گرونم نفروش مگه میشه رو تو قیمت گذاشت؟ من این وسط برای چی دعوت شدم حالا چیزی که از شما میخوام. نظر من نگی یلده هنوز زن منه تا من ترتیب این لاشوه رو میدم امونت میسپرم اشتر شما اگه عمری باقی بودم اونت پس نگیرم اگه نبود زیر سایه شما جای دختر شما صورت فراست خیص عرقه روز میره طرف تخت یلده فراست شمگین به یلده نگاه میکنه دهانش رو باز میکنه که به روزبه چیزی بگه بلی نمیتونه دستش رو میذاره روشونه روزبه و میره یلدا به رفتنش نگاه میکنه روزبه میاد طرف یلدا یلدا سرش رو تکن میده و صورتش میگیره تو دستاش واقعا روزبه میریه طرح پیلپون اتاق به کنار تخته. مبهوت میمونه. پیکان روزبه که ویلچرش روی بار بنده اونه دم در ساختمانی می ایسته. همون ساختمان محل کارشه. یه نگهبان پشت میزی نشسته. روزبه میاد تو. روزبه به سختی از پله ها میره بالا. توی اتاق آصف نشسته پشت میزی پیشونیشو رو دستش گرفته و کلی پروندی دور دورو برش حتی کف اتاق پره پرونده است سن. خرابه. روز به اصبانی کشار رو یکی یکی باز میکنه آصف میاد اونو میگیره روز به صورتش قرمز شده وای مدارکو دزدیدن مداریک سرقت شد حقیقت که گم نشده بله حقیقت گم نشده تکه تکه شده به اسم محرفت. افتاده دستی یه آدم می محرفت بار گفتم مصطفی پشتش گرمه از یه جایی حمایت میشه بله بیدونی کجا امون جایی که حقیقت مزله شد بیدونی کجا پای اون سفینه یه فضایی که تو خیابونای شهر تو لایتیه مهیرا توی خلق الله میره یه بار که توش دادی باد میفته به قلقبت کک به تومونت اگه حقیقت میدونی کجا گم شده وقتی حبس می کنی طبقه بیستو بوش شنا کنی آب جگوزی با بقیه نسوزاتا مشرو میبر اونجای که عرب نه انداخت همین رفیق فیک رفقای که از چتل آب شهررا آب حالشون رو هم خورد مزه رو خیلی رفتن نیو فاصو رقه چجیکه چبودی حساب ما باید ابل همین رفیق رفقا رو برگردیم سر جای ابلشون اینا که برگردن حقیقتم برمیگرده سر جاشون حقیقت وقتی برمیگرده که هرکی خواست حقیق صبح بگیره دستش بلرزه. هر کی خواست ضعیف گوشی کنه باش گیر بیفته اعتقاد مردم بایمی برشم جنابه روز به حالا که رسیدی به قده چرکی برو دنباره یه جرانه یاردیست این کار یه چلو دار میخواد یه جوان مرد که درد مردم چیگرش رو دیش بزن آب در کوزه ما تشن لبان میگردیم این کارو خود فرازت اشتباه شما تا حالا این بوده که میخواستی از خاجی جنزبان بسازی به این جلو بگو بسم الله زبون داره سباد داره فتاد بشم دور ما این خط بگش دست از این جنگولک بازی بردار برو دنبال یه کاری درست درمون آصف کیفو کتشو بر میداره که بره روز باهی به رفتن آصف نگاه میکنه فراست ماشینشو دم در ساختمان محله کاری مصطفی نگه میداره میره بالا پسرمو در رو براش باز میکنه میاد طرف مصطفی. یه پرونده میده به فراست چی لو رفته از پرونده های به تو تا آبروی نداشته ای من من گدا هستم واسه پول گسته میخورم تو پولاری واسه آبرو خش به آسیا بردی خاک نصیبت میشه این پسر الان میده پس پیچه یکی کنن <تصفح> جماعت صاحب منصب جون به جونش کنی همون خرستی هست و رد آسیا انتظار داشتی این پسر مدال به تخت سینا دختر خودکشی کرده پسره این وسط به سگ نه حاضر شده تو همه این لودره دادی دم تیر همه چی رو لودادگه حالا پسره ششش خبردار شده پای منه کشیده وسط کجا سر تخت دختره خبرو است اون نه مییره از خودت واسه اینکه سر پرواز تیاره کل سر اوناره کیف خانم کوچیک رو کش رفتم یه نظر حلال انداتم توش من از شوخی گرساشو با یه بس آسپرین بایر تاحت دادم. یه با مثل دنبه انداختم جلو گربه تا خواست گردش بده فرستادمش دو دنبال دومال ها وقتی پرونده قیم قیمه, قیمه جمعه شد مثل یه گردسفند درسته کشیدم برا پرده آخر نوات شماست تا بوی گنده گمگور شدن دوسی ها بلند نشده ایوه ایرادش راست سریز کن بفرسته رجاشو از خانم کوچیکم هم حراس نکن با جروبوزه هست اما قرار مدار حالیشه. یه پنجه تارم زدم فرد داشت در می آر داره پشت سر مردی که روپوشه سفید پوشیده توی راه روهای نیمه تاریخ میاد. آر آه اون جلو روی یه تقیه جسد هست که روشمنافه کشیدم شب عرض بزرگ یه ماشین با سرعت زیاد بهش زده و در رفته زربه مغزی درجا کارش ساخته روزبه با وحشت میری طرفش ملافه رو میکشه کنار ای وای، این جسد آصفه روزبه چشماش پر از عشق میشی ماتم زده خیره میشه به صورت آسف یلدر روی صندلی عقب ماشین پسرموش نشسته پسرموش ناسمه یلد رو به طرف اون میگیره یالدا صفحه ازدواج و طلاق شناسامش رو نگاه میکنه میره تو فکر دیگه آبچه <تصفيق> بالاخره تکلیف ما روشن نشد تو این معامل ما به کی پروخته شدیم؟ باسته نخوار آبجی خودم روشندت میکنن شما اگه زن ما شده بودی که هی بهت نمیگفتیم آبجی آبجی پس مصطفی کچولوین اسم نحست تو تو من چه کار میکنه خیالی نیست شما هم به ما به انداز کی بهتر از شما ما طبق فرموده کار میکنیم دیروز فرمودید رزت دقده جناب فراست دادم خود داد امروز فرمودن شما رو پیشکش کنی. کنیم داری میخن. میز منشی فراست دفتر جناب فراست بفرمه روزبه هستم روزبه ایرانی بهشون بفرمه یک کار فوری داشتم متاسفانه تشریف ندارم ببخشید ایشون که یه تشریف میرم هفته ی ای آینده یه هفته ی دیگه چطور تو چطور ندار آقا ارز کردم تشریف بردم مرخصی روز به توی اتاق کارش گوشی رو میذاری. روز به دریم یه طرفه خونه‌ای. پسرشون نیاجه آجا تشریف ندارن. تازه رفته، منم خالی. نشونی هم ازشون نداری. باید از باباجی بپرسن. خب برو از بابات بپرس با با با من عجله دارم. جیم خونه نیست. خب از مامانیت بپرس. مامان این مافونانه. حسودی از کی می‌پرسی بولبول زبانی می‌کنی؟ مگر شما آب تو خونه‌تون نداری؟ روزبه میاد. یه پسر جوان میاد طرف در. کلید می‌ندازه به قفل. پسر بچه به روزبه اشاره می‌کنه. جواد. جواد از پشت به روزبه نگاه می‌کنه. جناب روزبه؟ جواد. توی ماشاءالله. جناب و فراستت چی شازدهی پر برونه جناب روز به دستم به داونه دست. به دادمون برس یه مرد که گریه نمیکنه کنه چی شده یه دردی که به هیچ کس نمی شد. فقط بعد سخت و سخت مادرم دق کرده الان تو بیمارستان زیر سرم بابا بابا بابا ترکمون کرده بعد از زیا رو داری مادر وی کرده رفته یه زن گرفت یه زن جوون همدیگر رو بغل میکنن روزبه میره تا اینو رو میشنمه تو فکر پیکان روزبه با وینچرش روی باربند جواد پسر فراستی کنار اون نشسته توی محله های بالای شهرم نگه میداره جواد ساختمانی رو به روزبه نشون میده و خودش به سرعت میره روزبه میره طرف در ساختمان زنگ می زن. بله جانم روزبه هستم استاد روزبه ایرانی روزبه ساختمان میشه فون، باقه چقدر بزرگ تمام محوطه چمانکاری و گلکاری شده است باغبانی داره گلا رو آب میده روزبه متعجب میبونه داخل ساختمان مثل قصره پرده های لوکس مابلای بزرگ گچفوری های عجیب و غریب. کابله نفیس روزبه با ناباوری و تعجب به همه جا نگاه میکنه اش توی چشمش جمع میشه فراست از پله ها به طرف پذیرایی میاد یه لباس راحتی ابریشمی سفید رنگ پوشیده روزبه رو بغل میکنه روزبه به پاش میفته مچ پاشو میچسبه فراست خمیش اونو بلند میکنه روزبه هنوز نمیدونه فراست چه کار کرده استاد یادتون میاد اون حیات قدیمی حووز پر از ماهی یا سای امین و دوله با وحشی منو دست انداختی جلو چرا حرفتو نمیزنی؟ توی اون حیات قدیمی صدای بال فرشته شنیده میشد وقتی شما مصنبی میخوندی من دلم قرص میشد که خدا عاشق بنده صورت روز به قیص شده بسه دیگه رک و پوسکنده حرف دلتو بزن. استاد بیا برگرد به همون حیات صدق و صفا به همون زندگی ساده و زلال. یعنی ما بعد از هفت کرر زاییدن حالا باید بریم از اینمون بپرسیم رسف زایمون چیه؟ غلط کردم ازدار بیجا کردم من فقط التماس کردم به خاطر اون جوونایی که تازه اومدن توی گود به خود اگه اونا مثل ما شما رو زلال ببینن با همون صدق و صفا همه شون تو داری خودتو از بین می تو هر کاری از دستت برامده کردی تا حد کندن همه یه روزی بازنشسته میشن امروز روز بازنشستگی توه دور زمانه تغییر کرده یه نگاهی به اطرافت دنداز، آدمایی رو میبینی که هیچ نسبتی با تو ندارم تو اونا رو به لاغیدی متهم میکنی اما اونا فقط میخوان اشتباه ما رو تکرار نکنن اونا میخوان به عقلشون اقتدا کنن روزی که به گوشت تن این بچه ها نیاز بود که مثل دیوار دوره مملکت کشیده بشه کسی رجی از عقل نمیخوند که این را رو آزاد کرد به زمین مشغول شدیم و از زمان قافل موندیم زمانم شورید ما رو پسد حالا دیگه ما شدیم پس مونده این سفره. یه طرفه به قاضی میری جمع. تو کل سرسود این مملکتی مردم و سخونهای پوسیده شما رو تبرک میکنند اما دیگه کسی واسه این حرفات تره هم خورد نمیکنه حتی اگه فریاد بزنی صداد به گوش کسی نمیرسه تو صدای قریبه پیچیده که دیگه صدای آشنا رو نبیشن صدای داره از گلوی خود مادر میاد منی که 20 سالی پیش قاطی خلق و لاویزین و دو طبقه سر میخوردم میرفتم جوادی و خنات آباد حالا ماشینم شده یه بشقاب پرنده خونم شده لست شاباد دیگه هرچی هم سور بزنم فقط صدای قریب از گلوم در میاد تو مثل یه میمونی می چنان نمونفجر شدی ای نخوند سا این بسط موندی میونه دستا با هیشگی نمیدونه چطور میشه تو را از کار انداخت هم نمیدونه کی قرار منفجر بشی اومدم به تو میگم آسفا کشتن زنم دستم در آوردن نمیدونم کجا بردن و بیکی بردن اینواره شما مهم نیست روزبه دست فراست رو میگیره فراست میمونه دستشو آرام از دست روزبه میکشه بیرون روزبه را رو میفته که بره یلده از پشت پرده میاد بیرون روزبه صدای قدمه اونو میشن تازه فهمیده می صورتش به هم می گذه چشمشو می و خودشو با نتخد تنهی کنترل بکنه شبه روزبه توی کوچه ها بیخیشتن، خیز باران شدیدی شده که داره میباره. به سمت گوشه میره که یه نفر با چتر ایستاده. می ایستی. یلداس ای رو به روزبه میده. "مامان توی اتاق یلدا پرونده رو پارک میکنه روی میز. چادرش رو آویزون میکنه روزبه کتش رو در روزبه می‌خواد بره کنه یلدا مانعش میشه. یلدا لیوانا رو برمی‌داره، میره آشپز آشپزخونه. روزبه میشینه." بازم به من ترهام کنی؟ نه. اومدم نقشی که اینو اون برام نوشتن رو به هم بذارم. نقشی که خودم دوست دارم بازی کنم. این بود آزاری که دو مالش میگشتی؟ آره. مهم اینه که دیگه عروسک خیمه شب بازی اینو اون نیستم. حتی اگه الان تو هستم خودم تصمیم گرفتم اینجا باشم. با تضم بازی بکش بینو. این راه آخر روشن رو نیست. بیا راه توشه برداریم. قدم در راه بی برگشت بگذاریم. یادته با این خدشر. که دلهایی رو تو دانشگاه هوایی کردی اونا رو بردارو برگرد بلوند دیگه بهشون گذی ندارم نیازی نداری؟ من به خاطر اینا هرچی پل بوده پشت سرم خراب کردم آصف بسیت کرده ازم خواسته که راه دیگه ایده برم باشه از فردا خودم میرم بیش غازی تا اینجا اومدم تا آخرش خودم میرم میدونستم میای. احساس میکردم آخه این لحظی اتفاقی میفته احساس قربت میکنی؟ نه اینجا شهر منه ولی خیلی غریب شدی بهش عادت کردم حالا دیگه دوستش شدم مصافی توی اتاقشه به سرفونده شم اونجا از اولش هم به این پیری شک داشتم زران شدی دو دوزه بازی میکنه یکی به میخ میزنه یکی به نه هم با ما سلامتی میکنه هم به سام اونا میگره این همه چریه کودو بعد اگه دست من بده اول این پیرو رو وا میکنم کار کار خودشه تو نمیری دست هسه رو خوندی غیر دست اینو حالا هم از پایینت با خبره هم از بالات تو جک بزنه اون حوار میکشه چاک تنت ببند برون گوشه بمرج دختره از اولش هم با بوزه بود اما تا فکر اینکه که جون بهوش با دستمانه دست از فختانه میکرد حالا معلوم میشه بابا شده دست دوم دو خیرار باب این آقا قاپشو دوستیته ما شدیم دست دوفام آب همون مفت فازلاب پس بانده یه و باید داد بولا من موندم که این بازی رو کی میوازه یه دیونه یا یه لشگر آقه <تصفح> دیوونه؟ شکایت دیوونه رو پذیرفتن حتم جلب فراست با دو مرد وارده اتاق میشه مصطوفی به مرده کشت سر فراست کشم میکنه که برم پدر را کام فراست میاد میشینه رو سنگرلی روبروی مصطوفی مصطوفی منم مصطوفی یک کاغذ میده به فراست به نظر حکم دادگاهی وسیقه به زاربانه به کشم یه کارا نیمه اون دارم و اعتموم کنم دو نفر معمول با یه لباس شخصی میاندوید فراست از روز همده کامش نصوفی بهش نگاه میکنه و میخنه پسر میره طرف فراست فراست میره بیرون اینجا دفتر کار روزبهه روزبه تلفن رو جواب نمیده کیفشو برمیده کتشو میپوشه و میده توی راه رو کناهی تلفن میره سرکار آشنای ناشناس نام بارک این نامو بی سر و با اما مشتاق دیگر امر شرفیاب شدم ارز میکنن خلاصش خلاصش این که یکی از خیلی دلش میخواد خلاص پیکان روزبه با ویلچر روی باربندش روی یه جدیه گلیه خارج از شهر آره اینجا گورستان ماشیلاست نگه میداره یاده میشه را میفته دنبالی کسی یا چیزی میگرده یه مرد درشت کل با موهای فرفری لحظه ای از دور پشت سر روزبه دیده میشه یه مرد جوانی دیگم ناگلای ماشینا قایم شده یکی دیگم هست یه چاقو از جیبش بیرون میاره به روزبه نشون میده سه مرد مهاجم از روبرون میان طرف روزبه روزبه به عقب برمیگرده مصوفی با اساش و پسرش پشت سرشند درست دیدی شک نکن من انقدر دارم خرج بخوام بخرم نقد بخرم عمر نوح کردی هنوز نفهمیدی هر چیزی رو نمیشه خرید و فروخت من از وقتی چش باز کردم دور برم برام همه رو دیدم تو هم یکیش یه را پیش بات می‌ذارم قیمت چنده آشغال که قیمت نداره تازه بعد هم دستی بدی شرشو بکنی بسوفی با این جواب میده مردا دور روزبه چاقو به دست میچنن نرخ تو بگو پشتشم بزن به چاک و الله به سه شماره حرومت میکنن این حرفا واسه دهنتو خیلی گنده است رفیقاتو بی از نزدیک ببین رنگ از روشون پریده یکی از خوش میزنه به پای روزبه روزبه میفته پایی مستویش پ مردای مهاجم مات میبونن یکی از مردم این طرف روزبه ها تاگیرمه درست کردی یعقوب خطر بابا خط کردی زبون خرولا میفهمه نیابون مصطفی مید کنار اونا پای روزبه رو بر میداره پا رو میده به روزبه روزبه پا رو میذاره سر جاش چشمون دونت اینجا تا بوی گند این لوتی ها به دماغت بخوره بفهمی اگه یک ذره لوتی گیر مونده و همین آشغالو ها و کسافت تو اگه لوتی بودی آسفه از برشت سر نمیذاری؟ من که بوی رحمانم خیلی وقت بلنده یه ببکر دامون و از یه طرف میرن سه تا مردم از طرف دیگه به از همون جایی که مردا رفتم به راه میفتش محصوفی و یعقوب با شنیدن داد میمونن یعقوب به دو دنبال روزبه میره یه نفر با چوب دستی کوبیده تو سر روزبه. حالا تهدید کنان میره طرف یعقوب. یه نفر دیگه روزبه رو بغل می‌کنه میندازه توی ماشین ون خاکستری رنگی که اون دورتر منتظر ایستاده. مردی چوب دستی به دستم سوار میشه. مصطفی یقه یعقوبو می‌گیره. چیکار کردی تو؟ بخداگر ما نبودن. هیچ ساعت و دقیقه شب. الدا تو خونست منتظره تلفن به دست نگران راه میره. گوشی رو میزره روی میز پیغامگیر رو تلفن میزنه صدای آسف حالو روز به معلوم هست کدوم خراب شده ای؟ هر قبرستونی بگی امروز سر کشیدن زنده ها هیچی مرده ها هم سیجین کردن راستی یکیشون سراغت رو میگرفت می به این دیوونه بگو ازدواج که با عشق شروع بشه آخرش جداییه تبع توندا زود درغش در میان این یلد خانمت هم دیگه به رخ ما نکش من اینجا یه تیم فوتبال یلدا دارم جدا با خوشحالی میره طرف در وای فراستی که پشت داری یلا زنجیر در رو از داخل میندازه در نیمه باز میبونه فراست اونوره در یلدان اینور شما اینجا اینو من بعد از شما بپرسم شما اینجا رفته بودم شکار خودم افتادم به دام غزال من در دام و سیاد گریزپا غزال تو مورد فراست تازی رو که به زور ببری شکار مرده میاره مرده همین قضال هم برای ما آبه حیاته از اون مراتب علم و فضل و کمال چی؟ علم و فضلی که به چل سال به دست بردم دادم این درگسم از دانه به یک ماه ببریم این آبه حیات آبه رو تو میبره جانا نظر تو بر نگردد برگشتن روزگار است. کابین من آلوده شده فراسط این لکی‌های خون کیه؟ آصف راه خودشون میگفت. آدم من نبود آدم تو نبود؟ آدمم نبود؟ من سال‌ها خودم رو این ظاهر و صلاح پنمان می‌کردم اما لحظه ای که تو رو دیدم محبت اومد تو دلم اون نفاق رو شست و برد من فقط نقابم رو برداشتم اونی که تو دلت افتاده محبت نیست مرزه بلندشو یه دست مردونه بده به روز به پشتش بایستا تو با من سیراب نمیشه این رسم کجاست آب رو از جگر سوخته دریغ کنن این بوی تفون منو به رخم نکش من به خاطر تو پشت پا زدم به حیثیت چل ساله زنیری که گیساشو تو خونه من سفید کرده بود کردم به من جفا نکن یلدا من مستحق این همه خاری نیستم فراست سرشون می خوبه به در فراست میشینه پشت در یلدا با ناراحتی از لای در به اون نگاه میکنه درو میبنده فراست بلند میشه میره یعقوب اومده دم در خونی فراست ماشینش دم در پارک شده فراست میاد بیرون یعقوب در عقب ماشینو رو براش باز میکنه میشینه ایوا این یعقوب هم برای مصطفی کار میکنه هم برا فراست حرکت میکنن فراست با لبخند موزیانی به حرف یعقوب گوش میکنه مای ما تو خونه نامهرم نگه داشتی که ما رو پشت در بست گذاشتی خونه ای که توش نشستی استیمال یه معمار بود با حرفا بدقلالی کرد بیخ تا بیخ سرشو گریدم پلیدشو کردم تقدیم عالی خوشم میازد ساده نشو بدی ولی زرنگی دختره که لوتی خورش کردی رفت مونده بود اون پسره تا وقتی که موی دماغ مصطفی بود باهاش بازی بازی کردی همین که قاپ دختره رو دوزدی دیدی شده سرخر خودت سرش کردی زیره شک نهارم کار خودته میدونی شه کجا خبردار شد سر لو رفتن پرونده ها هربابا گذاشتی سر کار اون دختره کم بود اون ویلا کم بود حالا وقتشه بری باز باج بگیری ولی به جون یعقوب حقته کارت خیلی درسته مجبور کردی هرباب آدماشو همه جمع کنه دور خودش از صدق سر شما افتاده به وسیعت این مصطفیه توی یکی از اتاقه مجلل خونی فریور همراه با فراست و ادهی مر آیون دکتر، مهندس رئیس تجارتخانه گاراژ، انبار، کارخونه و کنزرپنزرهای من ایشون توفیقی و کیل این پرونده تازه اما اصل قضیه این آقا پوست خرس نکشتر رو به ما فروخته <تصفيق> ما اون خر شدیم و خریدیم قاضی <تصفيق> خیلی شنگول باشه گل آتی دستمون نگیره اقلی کم پنج سال چیزی چوب آب خونک پسته بخی کمون <تصفيق> شاکی ریغ رحمتم سر بکشه مدهی لومون دست فرده میداره من این ورمیله میله اون ورمیله میله آب از آب نبسته که بخوره خلاف به عرض مبارک رسوندن شاکی سر و مر و گنده سر جاشه من فقط از اشیه زهر چش گرفتم و تو نبودی که با چه ماک تو ملاجش نکنه سر ناشش آبال حیات خیل میکردن اون خریت کرد به چند تا آدم لگت زد آدم که بر نمیگرده به خر لگت بزنه کدوم چون؟ کدوم چون ما؟ جناب وکیل شما قضاوت کنید پرونده‌ای که علیه ایشون اقامه شده دست کاری شده است اسنادش کاملاً مخدوشه درست مثل اینکه یه روانی ترتیبش داده باشه ایشون هم یه شاکی دارن که مطابق این همه سند و مدرک از بیمارستان گرفته تا تیمارستان روانیه فقط مونده جلسه دادگاه که جناب قاضی با چشمای خودش این سند زنده و دست اول رو بالعیان ببینه شما خودتون هم میتونید از نزدیک رو ببینید و قضاوت کنید این طرف در, در رو باز میکنه روزبه رو با چشمای نیمه باز و سر بان پیچی شده که روی ویلچره میاره صورت روزبه ورم کرده و بینید جلل خالق هی اغو براست میگفت مرکن چیل میکره موچش زنداش موی دماغه چشم و چراغه یعقوب میاد دمه در خونی فراست اینجا داخل خونه فراستی ای یلدا برگشتی اینجا اون چادر به سر از دری ساختمان میاد تو حیات یعقوب نشسته لبی استخر صرف اونه که دنبالش میگردی نشونش پیشه مرنه اما اول باز حرفم رو گوش کنید اومدم آخرین کلومم و بگم اون برم من دیگه آدم مصطفی نیستم امرو خر خودمم ما آدم مصطفی شدم سر خاطر خواهیه تو اما اینو بدون نمیذارم این لغم اگلوش پایین بره حالا که کار از کارگازشته کرکاری میخونی یعنی ما بریم بمیریم نه این حرف آخرت چه بله سر روز به ها اوی روزبه من منم یا اون پیری سراغ حبورو باید از حبوش بگیری اون پیری با چماغ زد تو سرش نهشش هم زد زیر بغل و سگ خور کرد اگه وقت نمیاد جاشو بهت نشون میدم جایی که به عقل جنم نمیرس خونه خودت امارت سولت دوله اونجا مش لاشخور دارن رو نهش اون معامله میکنن یلدا ماشین رو پارک میکنه اومدی تو ساختمون پدری از پشت پنجره مستوفی و فراست رو میبینه که توی پذیرایی دارن با هم حرف میزنن ما همه کردیم کار قیش را نومت تو شد بجم با قیش را از خراج کیش یواش از دمه پنجره رد میشه میره تو زیر زمین. اینجا زمین تاریک خونه است با کلی وسایل و خرت و پرد میری طرف یه صندوق قدیمی در سندوق باز میکنه یه تپانچه قدیمی اونجاست اونو میاره بیرون تو این رو به گور میبری فراست این هماغته تو این کارو نمی کنی روز به کجاست آقل باش این جنوب مصری. تو هم سرواقعی کردی. بدمنو. بدمن تو فرات دلت سوخت حمی. یه احساس غلط دوباره اومده سراغه. یه تو چه؟ ما تو مسئولشیم؟ این همه ساز و برگ و بنیاد و سازمان ریخته یه کبیرجامیش کنه. این میگم تو چرا باید این کارو بکنی؟ بدمن. کیو علمان نمیبره میشه روز به روز حدتو بگو فراست. فراست پشت فرمان بنز قدیم میشه. یلدا صندلی عقب نشسته میان همون آسایشگاهی که ابتدای فیلم دیدیم و روز به اونجا بستری بود و فراست از اونجا مرخصش کرد یلدا از پله ها میره بالا میره تو همون بخش آسایشگاه همون آدمای معمول و مجروح جنگی توی راه روها دیده میشن پشت در همون اتاقی که اول فیلم روز به اونجا بستری بود میمونه مردی رو به پنجره نشسته روی ویلچر پشتش به یلداس. یلدا میره نزدیکش. این مرد روزبه نیست یه مجروح دیگه است که مشکل ریوی داره یلدا اومده توی قسمتی از آسایشگاه که توی اون مجروه های بدحال بستری هن. یه مجروح با هانی نیمه باز و چشمه کاملا باز سرشو برمیگردونه طرف یلدا نه این روزبه به نیست هر هراسان از اون اتاق میاد بیرون میاد واردیه سالن میشه آرام حرکت میکنه آه اینجا سرد خونه 100 تا کفن پوش روی تختا گذاشته شدن یکی دوتا دهتا. ده تا یکیشونو کنار میزنه از روی کفن صورت پیداست یلدا از حال میره یلدا از سردخونه اومده بیرون توی این راه میرسه به مردی که نصف صورتش سوخته مرد با انگشت جایی رو در انتهای راهرو رو به یلدا نشون میده یلدا با خوشحالی وارد اتاق میشه روز به مات روی بیلچره و فراست داره اونو میاره یلدا میشینه پای بیلچر روزبه منم یلدا چه بلایی سرت اومده روزبه کی تو رو به این روز انداخته خو خب یک کلمه حرف بزن یک چیزی بگو روزبه منم یلدا یلدای تو اینجا چه خبره فراسد هیچی ترکش تو سر بالاخره کار خودش رو کرد فکر میکنم بخت مراقبات تموم شده فراسد دست از نقشه پلیدت بردار. چرا از اون یه منگون اقب افتاده درست کردی چرا میخوای اونو به لجم بکشون این چه انتقامیه که میخوای از اون بگیری تو این کارو نمی به جرم قطر دستگیرت میکنن این قتل عمده این نخشه شوم از سایت بیرون کن من نمیذارم این بازی مزخنر تو تموم کنی حماقت نکن داری همه چی رو خراب میکنی اون یه لشه تموم شده است تو داری به خودت شدیک میکنی به زندگیت به آیندت اتفاقاً برای اولین بار در عمرم احساس میکنم درست نشونه گیری کردم فراست من میجای که مغزت رو متلاشی کنم یه گلوله حروم فکر پلیدت میکنم یا با چه فراست رو به طرف ده میداره فراست میره بیرون یلیا در رو میداره میاد طرف روزبه مقابل روز زانو میزنه چشماش رو میپنده کف دستاش رو روی جا پایی و بیلچر تیمون میکنه دستاشو میکشه به صورتش. روزبه با لبخند و تعجب به دان نگاه میکنه. فراست از سوی راه رو صدای گرلونه رو میشه صدای توپ و خمپار رو گون گین در جنگ همه درای توی راه رو باز میشه مرو ها عصبه دست و آسیب دیدن همه میان توی راه رو فراست با تعجب سر جای خودش خشک میشه. های شهر تهران ساختمانهای بلند تهران مردم مشغول زندگی روزمرن صدای های مختلف رادیویی جهان صدای آصف صدای تولد یک نوزاد و پایان <تصفيق> 美国通过了一项严历严历 حق سادش اینه که بچه دار میشه بچه نداری؟ جناب غازی بچهش کجا بود وقت جنگ خودش هنوز بچه بود وقتی که برگرد خب عزیزان این برنامه با صدا برداری آقای علی حاجی و تهیی کنندگی آقای فرشاد آزرنیا، تنظیم رادیویی و اجرای من شمسی صادقی به شما تقدیم شد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.